How are you trying, سلام محتب ببخشید مادرت گفت که اینجا منتظرت باشم اومدم باید درباره چاباش آراز حرف بزنم میخوام کمکم کنی کمک کنی که چاباش حجر و خونه و پول آراز رو بهش بده یه عمرو بابام دنبال حقش دایید نمیخوام الانم شوهرم بوده چیزی شگه خوبی ماما آروم آروم آروم آروم آروم میتونیو بلای شیید؟ بله Yavaş juba. Kas sa tahad natuke? Jah, mi. Saab, to biia be maman baro Kõik tepaks joktad? Kisem, baba Khameru daunud tahtid minkonud Kõik? Kui? Kui daunud tahtid minkonud? Kui? تلفون کی بود؟ لیلا گفت هنیف افتاده به تهتید کردن احتمالا سراب تو هم بیاد قافیه که به تنگایت شایر به جفنگایت لایه ها رو تنظیم کردن با جایی؟ آه. تو فکر فردا تو فکر شهادت دادن؟ زندانش که نمی کنی؟ این می زرم دونجا چی؟ همه چشو میگیرم؟ نمیذارم به اونجا ها برزم بخونه زندگیش که کار نمیدون ها؟ ها؟ همه همه حالا خبر میشه نه؟ utan nemizaram da علام. بوغ میزنی که بیام جایزت رو بدم خوشته نبودیم اون که الان ارادت دل همیخواد حرف کزنی دست تو بلکنم بادم حرفی آتیش میندازی خونه مردم از من میپرسی آدم حرفم تو مردم میسی دومادی بس اگه غریبه بودم حتما به سیخ میکشیدی کبابمون میکردی فردا کسی دادگاه نه یاد رسول بلا همین آشو هم کاسه من بعد شروع در دادگاه با کسی نیاد آراز نیاد نیاد یعنی نیاد تو نمیتونی قانون رو دور بزنی قانون؟ چی نوشته؟ نه نمشه تو هر شرایطی تو هر شرایطی برادر واس پشت برادرش بشه نابلت قانون نمشته اینی که تو میگی قانون جنگله حسرت کل بد بچه چک زبون خوشمه آتیش زبون نخوشم از این ماجره و کشکنه هر بار اینجوریست که در عصد خواه کنم یه وقت یه حدیدی تو آرا آرازت و کباب شدی هیچ وقت هیچ قدومتون نفهمیدین چوباش مهمترینه برایم گفتم چیزی نشده برای چی اومدی؟ رود گرفتی یا کباب شدی؟ درخت گردو به این بلندی درخت زیر سایه درخت کی خوابیدی برادره که سایه داره چه کاریه با خودت کردی من درخت خربوزه تو فعلا تو چشم نیستی دختر هستم که گوشه کنای بارم میکنی از سر تقصیره کی بگم خدا بگذره از لیلا شروع کنم با لیلا چه داری خانم اه یادت رفته فینتو تو دستماله ای من می‌کردی؟ حالا شدم خانوم؟ خانوم بودن که بد نیست، بگم. اینو ردای غریبه آره در میاره. غریبه این دیگه. خوشبال درخت گردی که کلاغ واش قره. چه این وضعی چیه تو گردوی رو انداختی؟ وضعیتو نیست. وقتی شهادتی نباشه وضعیتی نیست. شهادت هست، خوبشم هست. ساعت چنده؟ 11 وقت دادگاست. نمیذارم بره. انیفو خریاتش دادگاه کسی نره سلطان منو ببینم این وکیل ماست وکیل اونها قبل از اینکه وکیل کسی باشه شوهر منه الان دعوا سر ماهیت منه من وسط رو بگیرم پس به وقتش به زمانش به مکانش هم شهادت میده هم کارهای اداریش انجام میشه خب هم... الان دلم نمیخواد اراز شهادت بده دستت در نکنه دستت در نکنه چیه مگه نمیبینی رفته جلوی دادگاه وایساده مثل روی تمام دستان نمیخوام اراز چیزیش بشه خب من امراش میرم من اومدم وسط ماجرا رو جمع کنم دیگه از خودم میرم. تنها حتی شده بی آراز. کار خودمه. هم تم هیچ جا نمیروی کمتر از آراز نیستی برایم فلان که هستم بست دیگه تمومش کنیم این ماجرا رو داداشت ما به جون همدیگه انداختیم آراز آراز رفت کله خراب رفت رفت دول. Anlara birim dadak. Yine aybi. Ya. شما چرا انداخنی بههدادشه؟ درست صحبت کنیم چ میگه؟ دیشب اومده کلبه ر تو آتیصد حالا چه کشیده آقا؟ خصص تو کلبه بوده آراز تو کلبه بوده. کلبر به آتیش کشیده ح. حالا کلش در جه ای در دادگاه باعستاه گفته هرکی ساعت یازمیه جلی در دادگاه یه تالب میکنم که ضفر رف روپش یادش بره. من نمیدونم چا باش تو طرف دوایی؟ کریپست ها طرف دوایه؟ یا اون طرف دعبای هنیفو تیش زده با خدا بیا مرزم اون کلورا تیش زده یا پیداشت میکنی یا بلمش میگه جلوی در دادگاه زنجیرش میکنی بیبریش خب از ما افتاده که نمی بیدی جواب نمی ده این تنی یه اردادوششو طب یه چیز بگو دیگه منافع با هم فرق میکنه داره با قیمت جون تموم میشه این من فرق تو یه قدمی پیروز شدنی چرا نمیفهمه اینو چیزی نموده حقمون رو بگیریم حق من آرازه که باید سالم باشه نگم منافع فرق میکنه حاله ولی منافع من و بابا با هم فرق نمی کنه کیو داری میگیری؟ بابا رو خوبه فقط بد باشه چون شاکیونه ولی اگه بیاد کنال بکشه بخاطر اینکه دربان نشته ممکنه پدر پسریمون به هم بخوره میدونی چرا آراز قاطی کرد از سنیف کتک خورد برای که پدرمون رو دید التماسه دید که بخاطر چون مادرمون پول گرفت از حقش گذشت میدونستی؟ چرا چی نمیگی؟ منو با فرق میکنه. سلام ام لیلا بابا کریم بوستان هره تلفون کارت داره اومده الو الو بابا جانه بابا آرای تو خادر جلو داگه برای شهادت هنیفا منتظرشه بابا حنیفتی شب کلوه رو آتیز من نگران نشم من کی اینجوری حق خواستم به چه قیمتی خواستم نمیخوام بابا نمیخوام پس برو برو زودتر برسید دادگاه تو رو خودم اونت زندگی کنن آتیش بندازن تو زندگی نوبر و با. حالا این نوبرونه کی به میدون رسه که ما ها رنگش نیدیم الله و علم من همیشه دوست داشتم پسر ولی از وقتی لات بازی تو جای جوان مردی پر کردی رو بی سرپایی میدونستم میسرامت کنار خیلی نامرد هفته دوی روزا امروز نیست همیشه نامرد دوستیم تو بازی های بچهگی نامرده با تو کشتی های بچهگی نامرده با همه تو تقس آجید کشمیش نامرده با همه با همه جهان نامرده بی الا چابوش بوزش حسیده بزرمد که نامرده اشتا هم کور کورمشد شد شد میکردم Link näine ja kuru, Edil! Ože too, Mevadudesta eru。O unjust, on näine jordi. Es ta rεί kabla Stideri oras? Iba foideri? Odan furusideri? Zambachokk? Tšeti kordam? Zambachokk? Laudane. Zambachokk oras? Sa oled õnnelik, et sa oled õnnelik, et sa oled Kõik ei ole nõi, ne on ne on? Aras! -ku. Aras! Aras! Aras! Kõik jorda! Bude Aras kuul! Aras kuul! Kõik jord kõik jorda nende? خون از دماغ دادا شد نمی‌فهمم قسم میخورم شهادت دروغ ندَم قسم میخورم دست خط پدرامو دیدم قسم میخورم حق و نامس کردن پدرم قسم میخورم قسم میخورم حق کریم روستان سایه شده توسط برادرام Kõik on kõik on سالها پیش یه دعایش داشت آقا ما با حبیب نمیدونم شد هنوزم باشه آقا ما میدوندونست این مورده ولی یه چیزی خوب میدونست اینکه چرا سبیب برید و برادریشو کتپان کرد سراغشو نگرف دلش تنگ نشد همه اینا رو میدونست اما میگفت به سنو تو چاوش هم اینقدر که بدونی بسته این که روزی روزگاری یه امویی داشتی اسم حبیب که سال هاست ازش بریدم و برادریم رو کتبان کردم من پرسیدم آقا جون چرا بریدی ازش من گفت وقتی سی سالی چود و تعریف میکنم من سی سالم شد ولی عمر آقام اینقدر نبود که سی سال اگه منو ببینم دلیل این بریدن و کتبان برادری و سهندونی در وسته رو البته من آقامو بی خطا میدونم من می منطقی و سرپا میدونم حالکه که کتبان نکرد من یه دلیلی داشته به این مهنشون چی بوده چی شده که به کتبانه برادری رسیده شاید شبیه همون چیزی که من امروز رسیدم چیزایی که من از داداشتم دیدم چیزایی که ازش شنیدم من امروز به جایی رسیدم که با شما تاج سر به کتمان برادری رسیدم هنیف scong on summer band law یه برادری در حقم بکن دنیا یه بچه برامونده و یه زن که دو دستانم نیستن برشون کردون خونه خونم ماما برو دیگه بریم تو شما نگران نباشید خدافر به دلخواه خودم نایمدم میدونم بسید متنفرم میدونم فقط بی سرسده و بی درد سر میرسونم اتون خونه سرسده کنم چی میشه؟ نمی کنی زنده داشت آره خب قول داری ترناکی هر کاری ازت برمیاد دل خونه رو آدمو هر چیزی ازت برمیاد بی‌سرو صداه تو تو من نمی‌گونم بس مام تو خونه بمفرمی Zannede چه دایی؟ های نه ترس؟ خودت گفتی بیام اقشید میتونم ولی یه حجا خوردم چی شده؟ مسیج دادی با ترس و لرس چه بیار دیوار پریدم پایین با این سن و سا. چی شده؟ هنیف دهتیدم کرده چه؟ ترسیدم تا اینجا چی که پسنم دیشب کلوه رسولم اوتیش سده بیشمون از خونه بی سرسد اومدم بیرون که شهرش دامن خانوادم رو نگیره این قلچما بزرگتر نداره بزرگتر چابوشه بزرگتر چابوش کیه خودت بگو شما مه? شما بزرگترشی نجات هم بده از دست هنیف از دست شوهری که عادت کرده به دروغ گفتن پرسناک شده اما دوستت داره میخوام چیکار دوست دوستشنه یه مرد دروغ مال مردم خورو چه همچین بداری میخواد چیکار؟ نیست این وضعیت بابنک نیست دلید پناه میخوا خونت زندگیته الان برام زندانه تا با کریم تصویه نکنه تا عادت دروغ گفتن رو کنار نذاره تا این حنیف شر و شور دور رو برشه مندیف NÖD NÖD Ni on all Kellee wie vaadoo A! Ja Si Oonan as bezan shirt دو دوید بیان سلام سران رو زن و بچه هم کجا این خونه دوتا درداشت هر وقت مرد شدی نیم سرا بزنه رو ندارم هزینهیهرایت شما معم داست چاابوش رو ببینم میذاری برم یا از روز ردچم از را من میتون میگندم چوبوش میتون میگند آراز پای ما اییسات و چیم کم تر از اونو که همتر از اون که پاشپین ن کار را که کرد من که تمام کرد توی این میدون کسی با آراز کار نمیگه داد اون پیت بزیین رو میگیرید هسته کی ج همشه توی این میدون بهش کار بده نه الان دیگه وقتی اینه که من پس چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کنم یا خاک گو تنها میمانم میدانم میآین با تو آرامم بیتر شست تنها من هام می مالنم آرا چون آتش در زیر خاک هستا برگرد و بیا دل دی شب تو را من از برادر بیدم آشفتم آشفت چون از ما کسا رم جیده از